بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آلی طاهرین اللهم صلی اللہ علی محمد به حول قوی الهی آغاز بکنیم بحثمون رو و ادامه بدیم صفحه 13 کتابتون الفصل الاول اقسام و سیر لقلائیت و منات و ها. از اینجا بعد از اون مقدمه که مبادی تصوریه بحث گفته شد میخوایم وارد بشیم در این که آیا سیره های چند قسمان آیا همه سیرهای های یک قسمن، یک شکل، یا متعددن و آیا هر کدامشان مناط حجیتش دلیل اعتبارش یکیست؟ یا باز به طبعه اینکه اقسام مختلفن منات حجیت و دلیل اعتبار هم متعدد است و متفاوت است می در یک تقسیم بندی اولیه و ساده سیرهای اغلایی به دو قسم تقسیم می شود سیرهای اغلایی که در طریق اثبات حکم شرعی مورد استفاده قرار می گیرند سیرهای اغلایی که در طریق اثبات حکم شرعی دو سیره هایی که مربوط به موضوع حجم حالا یا احراز موضوع یا تحقق موضوع یا تطبیق کلی بر موضوع هرچه پس به بیان دیگر سیره هایی که مرتبط با طریق اثبات حجم شهری هستند و سیره هایی که مرتبط با موضوع حجم هستند پس در این تقسیم بردی ما دو نوع سیره یا داریم حالا به اعتبارات دیگه و سیرای و غلایی متعدد میشن به یک اعتبار به یک وجه وجه قسمه. داشتید تو منطقه هر تقسیمی یک وجه القسمه ای داره نوع اول قسم اول که که در طریق اثبات حکم شهری هستن بفرورت المقصود و به هاد قسم من السیر ما یراد الاسطدلال و بهی علل حکم شرعی الفقهي اول اصولی بفران مرادمون از این قسم از سیره ها آن سیره است که در طریق استدلال قرار می به ها استدلال میشود به آن سیره استدلال میشود برای یک حکم شرعی حکم شعری فقهی او الحکم الاصولی پس برابرین اینا خودشون انگار، دو نوع هستن سیره های که مربوط به حکمت، است خودش دو نوعه حکم فقهی را در استنباط حکم فقهی کمک میکنه، به کار میره در استنباط یک حکم اصولی کمک میکنه. خود اینا دونومن، سیره های مرتبط با خود و سیره های مربوط به موضوع این بحث بردیه. که حالا اینا خواست خودشون اهم از اینکه که در, در واقع تعیین موضوع، تطریق موضوع، مستان، تحقق، حالا هرچی چه در مقام امتصال، چه در مقام تعلق تکلیف آیا این موضوع تحقق پیدا کرد یا نگرد پس برابریم این اینا دو نوع اصیراه و قلایی که مربوط به حکمن گایی در استنباط حکم فقی کمک می‌دن گایی در استنباط حکم اصولی مثال برای دو تا شون مثال برای حکم فقهی عبارت است از اینکه مثلا ما میدانیم او یک سیره ای دارند چه اینا رو یاد نمی‌کنم ننویسید او یک سیره ای دارن که میدن من و شیعا مالکه هر کس چیزی را خیازت کرد مالک آن می شود خیازت کرد یعنی چه؟ یعنی یک چیزیست که مالکی نداره به خصوص اموال منغول حالا با اموال غیر منقول مثل زمین و اینها ملک کاری نداریم فعلا اموال منقول. مثلا مثلا یه دوتا چوب تو جنگل افتاده مثلا چند تا سنگ یه گوشه ای انداخته هر کسی سنگها رو بلند کرد برد خونه شون این مال خودشه هر کس یک ماهی رو از آب گرفت حیازتش کرد این مال خودشه هر کس یک صدفی رو از دریا داره بر. این ظاهر امره حالا اگر یه جاهایی قبانینی دارن مثلا برای مباهات یا برای نمیدونم بهره برداری از دریا و جنگل و اینا اونا دیگه قوانینیه که بعدن اقلای عالم اومدن نشستن تحت یک حکومت اینا رو وضع کردن برای مثلا انضباط ایجاد کردن در اینها برای مثلا حفظ محیط زیست برای چی چی ولی در حکم اولیه اینه که عقلای عالم وقتی نگاه میکنه میبینیم هر کس هر چیزی رو برداشت مال خودشه رضا قدیم مثلا خونه میساختن می, ساختن، می از بیابون گل می آوردن خاک می آوردن آب از خونه می آوردن درست باش آجر درست میرم خونه می زاختن. وقتی خونه ساختن آجر دیگه مال ایشون بود. لذا اگر کسی می اومد این آجر خونه ایشون رو میشکست؟ می, شکست، می چرا آجر خونه ای من رو شکستی؟ بهش دیگه نمیتونست بگه آقا خاک که مال بیابون خدا بود آبم که مال خیابون خدا میگه بله اینا تا خاک بودن تا آب بودن همینطوری بودن ولی الان که من رفتم اینا رو خیازت کردم و برش به یه هم درست کردم. خش درست کردم آجر درست کردم این اومده مال منه دیگه این اقلائی شارع هم میاد میگه آها این سیره اقلائه رو من در فقه هم اعتبار میدم، امضاش میکنم جعل حکم مماسل میکنم جعل حکم مناسب میکنم حالا با همون بحث که قبلا داشتیم دقیق کردید لم یردعن بل امواه و بل مثلا مثلا اثبت لنا رضا شار بهی مثلا اینها ثابت شد و یه وقتی پس این مثالش چیه در استنباه مثال حیازت مثل اماره ید اماره ید ید دلیل و ملکیه. مردم وقتی یک کسی یه چیزی دستشه اگر اومد دو اه این مال منه این بوزی که شما دستشو گرفت، چیزشو گرفتی، افسارشو گرفتی، داری میبری، دستت گرفتی افسارشو. این بوزه مال منه. اگر رفتن پیش یه قاضیگی و اون قاضی اصلا دینم نیامده هنوز. قاضی میگه آقا ببخشید. این خود دستشه. این مال ظاهرا مال خودشه. شما که میگی مال منه، برو دلیلی بیار. این اماره است، در اینکه مالک ایشون. این اماره، ای که اماره اوغلایی است. شارع میاد میگه بله، منم این اماره اوغلایی رو در فقه چیکار می‌کنم؟ امضا می‌کنم. پس خیازت من حازش ای ان من المنقولات ملکه استیلایت بر چیزی اماره بر مالکیت است اینا چیزهایی هستش که در عرف وجود داره و شعره میاد اینا رو اعتبار بخشی میکنه که میشهد فقه مثال در استباد گای اماره خودش ببخشید سیره اغلاعی خودش اثبات حکم فقهی منطبق با اون نمیاد بلکه اون میاد کمک میکنه اون سیره اقلائیه که حکم اصولی ثابت میشه که اون اصول، حکم اصولی به عنوان کبرا فی طریق استنباط احکام فقی در فق مورد استفاده قرار میگیره مثل کجا؟ مثل این که سیره اقلائیه میگه زواهر حجتن زواهر چیه نقا؟ حجتن بعد در علم اصول میگن این سیره اقلائیه که گفته زواهر حجتن شاره مقدس هم این رو تایید کرده، امضا کرده، راضی شده، لم کرده ان، لم یو اسس مبنای دیگری را بر خلاف آن. بعد میگیم بله، پس ال... رو من الكتاب و من الروايات و من النصوص و من الاخبار حجه. وقتی اینتباه شد، وقتی اینو میبریم تو فقه، یجوز العمل بهی وقتی اینو میبریم تو فقه، اون تو فقه وقتی به این روایت زراره رو رسیدیم، به این روایت به ظاهرش عکس میگین. حجیت خبر واحد عند الاغلا پس گاهی اوقات سیره اوغلائی آقا مستقیما به یک حکمی میخوره که فقه میاد اون حکمو تایید میکنه شاره گاهی به یه چیزی میخوره که شاره اونو تایید میکنه ولی بعد اون چیز بعد داره تو فقه مورد استفاده قرار بگیره پس این مستقیمه این انگار غیره مستقیم اینجا سیره اوغلائی مستقیما کمک میکنه در استانبول اینجا غیر مستقیم کمک میکنه مع کمک میکنه بل کمک میکنه وازعنی نه فقط یه تقسیم بندی هن و تصورش موجب تصدیق است شما فهم متوجه بشید ما چه میگیم میگید بله حالا عبارتم ببینیم اینا رو هم میتونیم بیرون بکشیم کما یستدل علی مملکیت الحیازه به سیرت اللغهائیه میخوان بگن حیازه شرعا مملک است حیازه شرعا مملک. میرن سراغ استدلال به سیره اقلایی میگن آقا حیازت اندال اقلا است حیازت اندال اقلا مملک است شاره این سیره اقلا را امزا کرده جهل حکم مناسب یا مماسل کرده پس این سیره اقلایی که قائم شده بر اینکه منها و شیئن من الانوال المنقولت المباحث ملکه ها این رو شاره هم ها تایید میکنه امضا میکنه جهل وکم مماثل میکنه لذا میگه فلفق این فلفق یعنی یستدل و فلفق این فلفق برمگره به یستدل هر جار و مجروری متعلقی میخواد دیگه کما یستدل و فلفق به فلان علا فلان و یستدلو برید خط وردی نمیشته فل اصول مثال اصولی شیه و یستدلو علا حجیت ظواهر شرعن به سیرت الاغلائیه سیره ای که اینچنین صفت دارد قائم شده است بر عمل مردم عمل ناس به ظواهر و این استدلال میشود آن در اصول یستدلو فل اصول این فل اصول نه العملو به ها فل اصول نه العملو به این فی الاصول جال و مجلور متعلق به یستدلو. یستدلو فی الاصول، بفرمایید ایم. و حجیت الضواهره به سیرت الاغلائیت القائمت علا العمله به ها. کتاب عبارت پردازیش، فارس وقتی عربی می اینطوری این می من بودم این طوری می و یستدلو فی الاصوله علا، حجیت طباهر شرعن به سیرت الاغلائیت القائمت عن العمل به ها این فیلوسولو می بردم قشنگ همونجا می سهشم بله نه نه نه نه قد یستدلنو في الفقه لإثبات الحجیت لبعض الامور به سیرت الاغلائیت می فهمت بله قای در فقه برای اثبات حجیت بعضی از امور به سیره استناد میشه لیکن توجه داشته باشید اینها ها گایی اوقات در فقه برای تشکیص موضوع ما دنبالش هستیم یا میبینید ما برای یک باب خاصی دنبال یک سیرهی هستیم بابی دون بابی یک بابی غیر از های دیگر ولی گاهی دنبال این هستیم که یک ای درست کنیم که همه ی عبواب جا میشه مثل حجیت زواهر فرق نمیکنه در کتاب طهاره اجرا میشه در کتاب القصاص اجرا میشه در کتاب الجهاد هم اجرا میشه در کتاب نکاح هم اجرا میشه بفرمایید حجیت خبر واحد لزوما این میگیم مسئله اصولی چرا چون در طریق استنباد در جمعی عپا اما گایقات یک باب خاصی رو فقط به ما میده این دیگه اصولی نیست این دیگه میشه نااهتان قواعد فقیه میشه قواعد چی فقیه مثل چی مثلا بله مثل چی مثلا مواردی که دارید مثل و طهاره. قواعده طهارت قاده طهارت قاده طهارت اصل اصولی نیست اصل فقهیه یعنی در کتابی برنامه قواعد الفقیه بعد بحث بشه چرا چون دیگه قاده طهارت مال باب نکاح نیست مال بابه بفرمایید قصاص نیست فقط تو کتاب طهارت بیاد یه جای دیگه هم مثلا باشه مثلا تو سید و ذباهه و اینها هم که مفید طهارتن و چیزای شبیه لیکن هادا انما یکون فی ما کانه مختصن به بعض الابواب الفقهی دون جمعه ها او جلده ها این نه این همه یه ای ابواب فقهی نه این تمام ابواب فقهي یا بیشتر ابواب فقهی چون اگر اینطوری شد میره در علم اصول و لا یطرح و فل اصول عادتا اگر ولی اگر نه مربوط یک باب خاصی بود میشون میگن از سالت و تهاره مثل مثلا همون اماره یدی که کردیم یه باب فرقی فقط است اینجا هم باز عبارت چه بسا بهتر بود همینطور به فرماید که کردیم سیرای و غلاییه مربوط دوک دو یا در طریق استنباد مستقیمن یا در طریق استنباد که اصولی که اون نتیجهش در فقی اجرا میشه خب مناعت این حجیت چیه دیگه نرسیدیم بمونه برای فردا انشاءالله جان بفرمایی بله. وَسَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَبَّدٍ وَعَلَى الله اللَّهُمَّ على.